هزار افزان برنامه از گروه جوان و فرهنگ نام خدا آن یگانه بی همتا سلام افسانه‌ها عمری به اندازه و عمر آدمی دارند و کل بار خاطرات هر کدوم از ما خالی از افسانه نیست چه بسیار افسانه‌های شیرینی که از زبان پدر بزرگ، مادر بزرگ و بزرگتر شنیدیم و با آنها خوابهای هزار رنگ دیدیم در برنامه این هفته یه هزار افسان ای رو از مردمان آسیای میانه براتون نقل می‌کنم به نام افسانه سه دختر برگرفته از کتاب افسانه‌های مردم دنیا با ای از فتوالله دیدبان. امیدوارم که لذت ببرید در زمانهای قدیم درست در وسط جنگل کلبهای قرار داشت که در اون یه مادر مهربون به همراه سه دخترش زندگی میکردن. دختر بزرگ خانواده ملیح و زیبا بود. از خواب که بیدار میشد آفتاب هم طلوع می میکرد. اون اون اونقدر زیبا بود که مردم دربارهش بارش میگفتن آخ خدای من اون درست مثل سپیده است. مادر اون رو زورنکا که به معنای سپیددم دم کوچک بود صدا میکرد کار روزانه زورنکا این بود که ظرف های مسیر رو اونقدر بشوره تا برق بزنن اون وقت با لذت تموم مینشست و خودش رو توی اونا میدید و میخندید بله این کار همیشگی و مرد علاقه اون بود روزها میگذشت یه روز این مادر به زورنکا گفت: زورنکا، دخترم، آب تموم شده. بهتره بری و کمی آب بیاری. زورنکا که در حال شستن ظروف های مسی بود، جواب داد: مادر من نمیتونم کار دارم. مادر از این حرف زورنکا ناراحت شد اما چیزی نگفت و خودش سطلی رو برداشت و به طرف چشمه برافتاد. فردای اون روز مادر در حالی که داش خونه رو جاروم کرد به زورنکا گفت زورنکا عزیزم میبینی که غازها صداشون در اومده اونا گرستن کمی اونا قضا بده این بار هم زورنکا جواب داد مادر من وقت ندارم اصلا چرا این کار رو به دو تا دختر دیگر که خیلی برات عزیزن نمیگی انجام بدن ها؟ مادر از این حرف زورنکا غمگین شد و بعد از اینکه تمام خونه رو جارو کرد به سراغ زرنکا رفت و اونو دلدادی داد و گفت زرنکای عزیزم این چه حرفی بود که به زبون آوردی؟ ها تو هم برای من عزیزی تو تو دختر بزرگ منی و تو رو به اندازه تمام دنیا دوست دارم تو نباید فکر کنی من دو دیگر دیگت رو بیشتر از تو دوست دارم نه زرنکا با ناراحتی گفت مادر جان من،, من احساس بدبختی میکنم میخوام از اینجا برم و زندگی تازه ای رو تجربه کنم مادر از شنیدن این حرف ناراحت شد و به زورنکا گفت آه من نمیتونم اجازه بدم تو از اینجا بری زورنکا من من من طاقت دوری از گریه یعمونش نداد و شروع کرد به اشک ریختن ولی انگار زرنکا تصمیم خودش رو گرفته بود و میخواست هر جوری شده از اونجا بره و روی این مسئله اصرار و پافشاری کرد و مادر به ناچار پذیرفت. زرنکا هم خودش رو برای رفتن و تجربه کردن یک زندگی تازه آماد. آه. ما جرای دختر بزرگ خانواده رو شریدید حالا اجازه بدید تعریف بکنم از دومین دختر خانواده دومین دختر خانوادم خیلی زیبا بود وقتی شبها جلوی پنجره می ابرها به احترامش کنار می ماه ما در مقابلش تعظیم کرد و ستاره ها براش آوازهای قشنگ و زیبا می خوندن. دختر ستاره ها رو خیلی دوست داشت و به اونها میگفت گفت ای ستاره های قشنگ شما بهترین دوستان منین. من فقط با شما صحبت می کنم و براتون درد دل می کنم و بعد ساعت ها به اونها خیره می شد و با اونها حرف میزد. مردم درباره دومین دختر خنواده می گفتن خدای من اون مثل ستاره زیبا و سرده مادر اون رو دوچکا که به معنای ستاره کوچک بود صدا میکرد. دوچکای افسانی ما به ریسیدن نخ علاقی زیادی داشت و از انجام دادن این کار لذت می برد. به طوری که تا پاسی از شب به نخ ریسیدن مشغول بود. اون همیشه فکر میکرد یه روزی نخها به آسمون می و اون میتونه به وسیلی نخها به آسمون بره و در اونجا از نزدیک ستاره ها رو لمس کنه و اونا رو در آهوش بگیره و براشون آوازهای قشنگ بخونه مدتی گذشت، یه شب مادر از خواب بیدار شد و برای سرکشی به دخترش دوچکا به سراغش رفت دوچکا همچنان در حال رسیدن نخ بود مادر با خواب آلودگی گفت دوچکا، دختر عزیزم، شب از هم گذشته، بخوابی؟ دوچکا همچنان که در حال ریسیدن نخ ها بود جواب داد مادر جان میبینی که بیکار نیستم دارم نخ میریسم هنوز کلی نخ مونده که باید اونا رو بریسم مادر با ناراحتی گفت دوچکا تو این همه نخ رو میخوایی چیکار ها؟ به چه درد تو میخوره؟ بهتره یه کمی هم به فکر خودت باشی و اینقدر تا دیر وقت پای این چرخ ریسندگی نشینی و به سلامتیت آسیب نرسونی دختر دوچکا از این حرف مادرش ناراحت شده گفت من چقدر بدبختم هیچکس منو دوست نداره نه تو مادر و نه دو خواهر دیگم اصلا هیچکس تو این دنیا به من اهمیت نمیده و منو دوست نداره من من باید از اینجا برم مادر با ناراحتی گفت این جرفی عزیزم تو تو دوتچکای زیبا و مهربون منی من تو رو به اندازه تمام دنیا دوست دارم تو نباید اینجوری تصور کنی تو دختر زحمتکش و مهربونی هستی خواهرای دیگت هم تو رو به اندازه من دوست دارن اما دوچکا شروع کرد به گریه کردن و اشک ریختن اونم تصمیم گرفته بود از اونجا بره و یک زندگی جدیدی رو تجربه کنه و اصرار مادر و گریوزاری اونم برای رفتن روچکا هیچ فایدهی نکرد که نکرد این هم از ماجرای دختر دوم خونواده دوچکا اما بشنوید ماجرای دختر سوم خانواده یعنی کوچکترین دختر خانواده کوچکترین دختر خانواده خیلی زرنگ و پرکار بود اون مرتب از این طرف به اون طرف میرفت و کار میکرد صورتش سفید بود و ابروهای سیاهی داشت برای همین هم بهش میگفتن لاستوچکا که به معنی پرستوگ کوچیه. لاستوچکا همه ی کارهای خونه رو انجام میداد و اصلا دلش نمیخواست از مادرش جدا بشه اون با مردم رفتار خوبی داشت و مثل پروانه دور مادر و خواهرانش میچرخید و کارهای اونا رو انجام میداد اون برای خواهرش از گلهای وحشی کنار کلبه گردنبندهای زیبا درست میکرد و موهای اونا رو میبافت و براشون آوازهای قشنگی رو که از مادر یاد گرفته بود میخوند لاستوچا حتی از کنار رودخونه ماسه می آورد و روی زمین جلوی خونه میریخت. ریخت لاستوچکا وقتی بیکار بود و کاری نداشت سراغ سنجابی میرفت رفت که در تنه درخت کاج کنار کلبشون لونه داشت اون وقت با چوب به تنه درخت میزد و سنجاب رو که لاستوچکا اسمشو گذاشته بود بلوچکا یعنی همسایه کوچیک از تنه درخت بیرون میومد. و بعد با هم توی جنگل قدم میزنه دتی گذشت نوبت به رفتن لستوچکا رسید اون دلش نمیخواست مادرش رو تنها بذاره اما چاره ای نداشت روزی که قرار بود لستوچکا خونه رو ترک کنه با ناراحتی به سراغ بلوچکا یعنی سنجاب همسایه رفت و با چوب به تنگی درخت کاج زد بلوچکا بیرون اومد و گفت لستوچکا عزیز چی شده ناراحت به نظر میرسی لستوچکا با بغت جواب داد بلوچکا یعزیز دوست مهربون من امروز امروز من از اینجا میرم بلوچکا با ناراحتی گفت چی؟ از اینجا میری؟ آخه چرا؟ لستوچکا جواب داد منم مثل خواهره دیگم باید از اینجا برم و زندگی تازه ای رو شروع کنم فقط فقط نگران تنهای مادرم هستم گل بده گول بده مواظب به اون باشی و که اتفاقی برای این افتاد به من و خعرهای دیگم خبر بدی بلوچکا گول داد که در نبود لاستوچكا مواظب به احوال مادر باشه بلوچکا و لاستوچكا با گریز هم دیگه خداحافظی کردند و لاستوچكا کوچکترین دختر افثانه ما رفت تا زندگی تازه ای را چند سالی گذشت مادر به شدت بیمار شد و کسی نبود که از اون مراقبت کنه. بلوچکا سنجاب مهربون وقتی از بیماری مادر پیدا کرد فوراً یاد قولی که به داده بود افتاد. برای همین تصمیم گرفت لستوچکا و دو خواهر دیگش رو از احوال بیماری مادرشون باخبر کنه. بنابراین رفت و رفت تا به خونه زورینکا دختر بزرگ خانواده رسید و به اون گفت که مادرش سخت بیماره و نیاز به مراقبت داره اما زورینکا به اون گفت من وقت این کار ندارم امروز نتونستم تشت مسی رو تمیز کنم و خودم رو در اون ببینم بروچکا از این حرف زورینکا عصبانی و گفت باشه باشه حالا که اینطوره تا آخر عمرت تشت مسی رو تمیز کن زورینکا تشت مسی رو برداشت تا خودش رو نگاه کنه اما یه دفعه از اون چه در تشت مسی دید به وحشت افتاد بله اون تصویر یه لاک پشت رو دید سنجاب به ای ما این بار به سراغ دوچکا دومین دختر خانواده رفت و بون گفت که مادرش سخت بیماره و به کمک اون نیاز داره اما دوچکا که در حال ریسیدن نخ بود با ناراحتی گفت مگه نمی بینی دارم نخ می رسم تا به ماه برسم و با ستاره صحبت کنم ها؟ تا صبح نشده هیچ کار دیگه ای نمی انجام بدم بلوچکا با نارتی گفت ولی ولی مادرت سخت بیماره و احتیاج به مراقبت داره دوچکا با خون سردی جواب داد باشه اگه وقت کردم شاید برم و یه سری به اون بزنم حالا زود برو بذار به کارم برسم کلی نخ مونده که باید ریسیده بشن بلوچکا که این حرف شنید عصبانی شد دم پشمالوش رو تکون داد گوشاش و تیز کرد و گفت حالا که اینطور شد تا آخر عمرت نخ بریز و در عرض چند دقیقه دچکا دختر دوم خونواده به انکبول تبدیل شد بلوچکا سنجاب بیچاره باید این بار به سراغ لاستچکا کوچکترین دختر دختر می میرفت اما خونه لاستچکا خیلی دور بود. و بلوچکا هم خسته هوادش تاریک میشد. شد بلوچکا چاره این نداشت و می بایست خودش رو چه زودتر به خونه یه لاستوچکا برسونه و اونو از احوال مادرش باخبر کنه بلوچکا هرچند خسته بود ولی به سرعت از شاخهی به شاخهی دیگه برید کاجها و سنوبرها و سپیدارها راه خونه ی رو به اون نشون میدادن. دادن رفت و رفت و رفت تا بالاخره خسته و کوفته به در خونه لستوچکا رسید. از پشت پنجره به داخل خونه لستوچکا نگاه کرد. لستوچکا در حال پختن پیراشکی بود و داشت آوازی رو که همیشه مادرش دوست میداشت زیر لب زمزمه میکرد. بروچکا مکسی کرد و بعد به شیشه پنجره زد. لستوچکا به محض دیدن بلوشکا بلند شد و به طرفش دوید و با خوشحالی در رو به روی باز کرد و گفت آه بلوشکا دوست عزیز من اینجا چیکار کار میکنی؟ و بعد با ناراحتی برسید نکنه نکنه اتفاق بدی افتاده مادرم مادرم خوبه؟ بلوشکا در حالی که سعی میکرد لستوچکا رو آروم کنه گفت نگران نباش مادرت یکم بیماره همین. لاسچکا با ناراحتی و باز گفت آه مادر بیجاله. حتما به کمک من احتیاج داره. باید هر چه زودتر به دیدنش برم. و بعد فورا آماده شد که به همراه بلوچکا به دیدن مادرش بره. لستوچکا تمام راه رو برای مادرش گریه کرد و اشک ریخت. و یک ساعت بعد به در خونه مادرش رسیدن. مادر و دختر هم دیگر رو در آغوش کشیدن و لستوچکا شب و روز از مادرش موازبت کرد تا اینکه حال مادر رو به بهبودی رفت اما حالا بشتوید از دو خواهر دیگه یعنی زورنکا و دچکا که اونا هم هنوز به شکل لاک پشت و انگه بودن افسانه سه دختر رو که از افسانه های زیبای مردمان آسیای میانست براتون نقل کردم برای از کتاب افسانه های مردم دنیا با ترجمه ای از فتولاه دیدبان از اونجا که ویژگی های خاص اجتماعی هر سرزمین تأثیر مستقیمی بر فرهنگون داره و افثانه ها که بخشی از ادبیات شفاهی هستند بخشی از چهره فرهنگند از این رو به نظر ضروری میرسه که ویژگی منطقی در افسانه‌ها بیان بشه هم که در این افسانه آسیایی هم بیان شده بود هزار افسان کار مشترکی است از نویسنده و سردبیر زینت سالحپور ویراستار سهیلا کریمی اجرا مهران دوستی صداوردار شیرین پورسکری تهیه کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانهای دیگر بدرود